بسم الله الرحمن الرحیم بحث ما بنا شد که دیگه بریم سراغ پیجویشی در اسما و صفات الهی تا به عدل برسیم برای بررسی صفات گفتیم پنج یا شش صفت رو مورد بررسی قرار میدیم اولین وصف حضرت حق صفت علمه ما میگیم خدا عالمه، الله عالم ببینیم به چه نحوی عالمه و علمش هست چه سنخوست، چه جنسیه اما قبل از این که بحث را آغاز بکنیم، گفتن این نکته لازمه که ما به استناد دو دلیل که بیان خواهم کرد به استناد دو دلیل تمام صفات کمالی رو برای خدا اثبات میکنیم به این دو دلیل میگن دلیل عام چرا بهش میگن عام؟ چون به واسطه این دو دلیل هر نوع صفت کمالی برای خدا اثبات میشه حالا میخواد علم باشه، میخواد قدرت باشه میخواد می مثلا اراده باشه میخواد کلام باشه متکلم بوده هر چی که باشه هر وصفی که خدا داشته باشد وصف کمالی باشه به واسطه این دو دلیل اثبات بشه به این دو دلیل میگن ادله عمومی اما مثلا وقتی بخواهیم راجع به علم خدا صحبت بکنیم این به خدا خودش یه شیوه خاصی برای اثباتش هم داره و ما هم گفتیم که بین همه صفات پنج یا شیش داره. یه صفت صفت قدرت و اراده است صفت عرض به که کلام حزت حق صفت مشیت و تابلسم به حکمت که عدل از توش در بیاد ما این چهار 5 تا رو میخوام راجع به صلحا کنیم راجع به هم صحبت بکنیم حیات عرض ده خب مقدمتا این نشتا رو عرض میکنم قبل از این که اون دو دلیل عمومی رو برای اثبات همه صفات کمالی از دقمت مطرح بکنم این مقدمه رو عرض بکنم این مقدمه خودش یه بحث فلسفیه و یه مقدار اون اواخرش نیازه به دقت بیشتر داره ما وقتی میگیم خدا به زبان فلسفه موجودی با این خصوصیات فلسفه برای ما منبع نیست زبان منبع ما کتاب الله و اطرتی تمام ما با همین دو تا مراجعه میکنیم اما همون کتاب الله و اطرتی رو به زبان فلسفه بیان میکنیم حالا وقتی ما میگیم خدا ما خدا رو میپرستیم یک ما خدا رو دوست داریم دو خدا همه چیز ماست. سه از این جملاتش در واقع گزاره های خطی که همه دارن یعنی چی خدایی که میگی کیه این خدایی که میگی شیشت خصوصیت داره اگه غیر این خصوصیت ها یعنی خصوصیت ها توش لحاظ نشه اون خدایی که تو میگی خدا نیست این بینال هلاله این جبله که بخوام میگن یکی سی دفته بود راجب امیر مطالبی رو بیان میکرد. بعد یکی زیبهای منبرش بلند شد. گفت آه اینا که تو میگی نشون بده که امیر از خدا بزرگتره از خدا بالاتره. از خدا چیه آقا؟ باناتر. بله از اون خدایی که تو میشتاسی بالاتر. امیر المؤمنین از اون خدایی که تو میشناسی چی ها بالاتره یعنی چی یعنی اینکه تو خدا رو کما او که باید نه این که شایسته اوست اون که شایسته اوس که امکان نداره اما اون خدایی که تو میشناسی یعنی یه خدای ناقصه حالا اگه بخوام خدا کامل بشه یعنی همون خدایی باشه که باید باشه ولی اون رو نمی‌شناسیم ولی نمی‌توانیم بشناسیم بشه یه خصوصیت داره یک البته به زبان فلسفه بیان میکنم. اولین خصوصیتی که در ذات اقدس اله هست حقیقتی واجب الوجود به ذات خداوند حقیقتی واجب به ذات یعنی اینکه صرف نظر از هر چیز دیگری وارق از هر غیری ذری و ریال وجود است حقیقت است که ذاتن و خود به خود اصلا نگاه نمیکنه به اطرافش اصلا اطراف وجود نداره این یعنی همون جمله درست است که در اوایل یکی بود و بله اصلا نمیشه گفت یکی بود یکی نبود چون نبود که دیگه یکی نیست که یکی بود و کسی نبود اید وجود به ذاتشی که یکی بوده فارغ از هر چیز دیگه هم هست. یعنی نیاز به دلیل نداره. ما وقتی میگیم الله یعنی یه ذات واجب الوجود به ذات. واجب الوجود به ذات یعنی وجودی که حقیقتی که به خودی خود باید باشد. فارغ از این که کنارش یک علتی بیاید یا علتی؟ خب واجب به ذات. ممکنات هم واجب هست ولی به ذات بل بلغیرن یعنی چی؟ ممکن الوجود اون است که اگر بخواد تحقق, بکنه، تحقق پیدا بکنه باید چی بشه؟ بله علتش بیاد حالا وقتی علتش آمد حتما خواهد بود وقتی علت ممکنات ظهور پیدا بکند ممکن میشه چیانا؟ واجب الوجود مده به ذات؟ نیست بلکه به چیه؟ به غیره یعنی با توجه به علتش چون علتش آمده اینم باید باشه اما خداوند واجب الوجوده به ذاته. یعنی اینکه هیچ علتی ندارد و به حسب ذات خودش ضروری الوجود است باید باشد و نمی شود که نباشه این که آسان بود دیگه پس اگر حضرت عالی رو من خطاب کردم که شما واجب الوجودید نگید فلانی کفر گفت بلکه کفر نگفتم واجب الوجود هستید منطقه چی؟ بلغه خداون واجب الوجود است منطقه به چی؟ به ذات یعنی حقیقتش شنی اقتضایی رو دارد اگه خدا رو واجب الوجود بلغه غیر بدونی اول چیه؟ کفره اول کفر یعنی برای خدا علت در نظر گرفتی؟ و خداوند برای تحققش علتی ندارد. حقیقتش هست که اقتضا میکند باید باشد و نمیشود که نباشد. این اولین خصوصیته پس الله حقیقتی است به بذات یعنی ضرورتا بدون اینکه اطرافی وجود داشته باشد باید باشه دوم چیزی که میگیم. حالا این خصلت وجود بذادخصلت دومشه، الله خت دومشه، حقیقتی است که معلول نیست ما در نظام هستی نسبت به موجودات دو تا انوان داریم یا عامین علتتا یا عناوین چی هستند؟ معلول هستن معلول هم معنای نقص نیست نقص جسمانی و اینها نیست نقص ها نهایت نقصه هر کی معلول بود معلول به زبان فلسفه این نقص داره ولو به نظر ظاهر مثلا فرض کنید هیچ. از جسمی هیچ مشکلی هم نمیشه اصلا معلول یعنی نقص خب الله حقیقتی است که معلول نیست یعنی برای موجود شدنش به شیء دیگر نیاز ندارد و مرادمان از شیء دیگر همان علت است معلول نیست یعنی برای تحققش علت نمیخواد اگه گفتن چرا علت نمیخواد میگید واجب الوجود به ذات اینا پیوسته هم هستن پس معلول نیست این دومین خصلتی است که در الله باید تو ذهن مبارکتون واریکتون یعنی شبای احیا که میگید یا الله، یا, یا الله، یا الله، اشیش تخصصی ها باید تو ذهنت بیای. خدا این با این تخصصی ها حالا هر کی هست. اون هر کیش نمیتونه بهش دسترسی پیدا بکنه. ودیش اشیش تخصصی ها باشه. این هم شد دوتا. این که حالا چرا معلول نیست تو تو بحث های شناخت مطرح کردیم اینکه چرا خدا معلول نیست تو بحث های شناسی مطرح کردی به موجه رجوع بکن سه ویژگی الله سه ومین ویژگی الله این است که علت نخستینه یا به زبان فلسفه علت اولا یا علت الال یا علت المبادی ولی اولین علت اولین علت است که معلول هم نیست چرا معلول نیست؟ چرا واجب الوجود به ذاته حالا علت اول است. علت نخستین در فلسفه به معنای اولین حلقه در سلسله علیمعلولی معلولی است سلسله ها حالا من یه سلسله به شما معرفی می‌کنم، بقیه سلسله ها رو خودتون در بیارید یه سلسله است منطقه سلسله از شیعه ها یعنی یه حقیقتی که یه سر داره یه تر داره بس است و در روش یه نظام وجود داره اینو دو سلسله حالا در سلسله علی معلولی که به صورت یک زنجیر است یا اول داره یا آخر هوال اول تو اولشی درست شو هوال اول تو اول هستی. این همون زبان قرآنه همون زبان دینه در فلسفه اون هوال اول میگن علت نخستین، علت نخستین کجا مطرح میشه؟ علت نخستین در سرسله علل و معلول مطرح میشه وقتی خداوند علت نخستین است حالا ببینیم چه اتفاقی براش داره میانفته و در سلسله علل و معلوله چون هیچ معلولی بدون علت پیدا نمیشه علت نخستین در فلسفه به معنای اولین حلقه در سلسله علل و معلولی اون سلسله ها میتونه متفاوت باشه میتونه مهره باشه میتونه اعداد باشه میتونه انسان ها باشن شما انسانی قبل از شما کی بوده قبل از شما کی بوده قبل از شما کی بوده هر متوجه انواع باشه میتونه اجناس باشن چیزها متفاوت میتونن در یک سلسله قرار بگیرن اما وقتی ما میگیم هسته حق الله علت نخستینه است اون سلسلهی رو که در نظر گرفتیم در فلسفه سلسله علی و معلولی یعنی حلقات علت و معلولی یکدیگر هستند ولی ذات اغدس اله علت نخستینه علت نخستین در فلسفه به معنای اولین حلقه در سلسله علی معلولی است اولین حلقه است حوال اول یک سلسلهی را تصور کنید که دارای حلقه های متعدد است نزیر حلقه های زنجی که به دیگر مرتبطان تا اما حلقه شما بود مراد از سلسله الیلی معلولی این است که حلقات آن ترتیب الیلی معلولی دارند یعنی یکی علت دیگری است یکی علت دیگری است به طوری که در آن هر علتی پیش از معلول خود و هر معلولی پس از علت خویش تحقق دارد همواره معلول تحققش کیه بعد از این که علت باشه نور کی روشن میشه چراغ کی روشن میشه زمانی که کلیدو بزنی کلید علت روشناییه تا کلیدو نزنی روشن نمیشه خب کلید میشه علت روشنایی میشه چی آقا معلول در سرسره علت و معلول همواره معلول تحققش کی همواره معلول تحققش بعد از علته و علت تحققش قبل از معلوله در این سلسله اگر حلقه ای فقط معلول باشد و علت چیزی نباشد آخرین حلقه است درسته؟ این وقتی شد معلول تموم شده دیگه سلسله تموم شده دیگه پس علت چیزی دیگه این نیست چون قبلی علتشه قبلی علتشه خود این قبلی علت بعد است ولی معلول قبله خب حالا در سرسره الان وقتی شدی آخرین معلول یعنی علت چیزی چون آخرین معلولی چیزی با واسطه وجود نمید انقدر وجودت بیخواستیت موجودات بیخواستیت همینه هیچ هیچی نمیشن در این سلسله اگر حلقه ای فقط معلول باشد و علت چیزی نباشد آخرین حلقه است و در مقابل اگر حلقه ای فقط علت باشد و معلول چیزی نباشد اولین حلقه است یا آخرین حلقه اولین حلقه است. فقط علت معلول هم نداره فقط علت برای تحققش معلول ندارد اما همه امور تحققشون وابسته به اوست اگر نازی کند لیدی زد قالب ها این لیدی مراد حضرت ذات نه لیدی اگه رو همه چی به هم ریخته دیگه هیچ این سرسره دیگه واهمه نمیونه چون این علت است قبلش چیزی نیست این علت قبلش چیزی نیست ولی معلولن بقیه یعنی وابسته به او هستند این در ازاه معلول علت چیزی نیست با به میشه خیلی وانزره شد بنابراین چی شد شد علت وقتی میگه خدا علت نقصدی است یعنی معلول نداره ببخشید یعنی علت و همه چی معلول اوست یعنی برای تحققش هیچ علتی وجود چرا علت وجود نداره چون, ما... چون که واجب وجوده به ذات است بیرون پیوسته به همه معلول نیست این خاصیت دومش علت ولی علت نخستینه علت نخستین یعنی برای تحققش علت نداره ولی همه امور به او وابسته هستند عرش و فرش و لوح و کرسی و ملکوت و جبروت و هاهوت و ملک همه وابسته او هستند همه وابسته او هستند و در مقابل اگر حلقه ای فقط علت باشد و معلول چیزی نباشد نخستین یا اولین حلقه است پس واژه نخستین در اینجا مترادف با غیر به غیر معلول است و طبعا مقصود از علت نخستین است که علت سایر اشیا و خود معلول چیزی نیست در فلسفه با این تعبیر ازش یاد می علت الال، علت اولا علت نخستین علت مبادی این هم خوب بود بریم سراغ چند رومی این هم ساده بود دیگه فقط یه خود ادبیات داشت و الله آقا اولینه چون واجب الوجود به ذاته است علت نداره شما هم میدونید چرا علت نداره چرا علت نداره چون اگه بخواد علت داشته باشه ناقصه محتاجه خدا هم مثلا روزی بده میگی سرکوزی بده که علت همون اجازه بده یا نخواد چه جا وجودی هستی تو که بخواد روزی بده تو میگی روزی دست منه اگه بخوای معلول باشی باید ببینید که بالایستی چی میگه اجازه میده روزی ما رو بده اجازه نمیده تو میگی من میدم ولو اینو ما ها نبیفهمیم این حرفها. اینو آدم مثل میفهمه وقتی میخواست طبعید بشه به روزه و امیر المومنین گو آقا من میدونم اونجور که دارم جای بدیه ولی اعتقادم اینه اگر آسمان ابر نداشته باشد و زمین را سر پوشانده باشد خدا روزی من میرسونه خدا وکیدی توی هم اعتقاد داری نداریره میگه اون که شده ابوزرد بیخود که نیست شده عبو زرد که آ وقت به کی داره میگه به پایین در خودش که نمیگه آقا مثل یه مقع این آی که ارباب معرفت و معنا هستن برای شاگردانشون میگن شاگردانم کیف میگم استاد ما کجاست آه. کیف میکنه آه داره برای امیران میگه پیش قاضی و ملق بازی که دیگه امیران که اگه ببینه مثلا هفت داره میگه آباما <متصفح> اوزن منم آ منم ولی به امید از اعتقاد میگونه او اگر آسمان ابر نباشه زمین رو صد پوشونده باشن خدا روزی منو رو میدستونه آقا من, من تو چی هستی خدا وکیلی این هم همه همه فشار آخر سال که یه جوری که خدا و اکیده فردا قیامته اگه ما اینقدر باور به قیامت داشتیم و یعنی توی این یه هفته در روز آخر همه یه خونه ها با تمیز بشه شیشه ها بانک سابه همه چرا؟ چرا فردا قرار سال تحمید میشه. خب میشه بچه میشه بعد روز دومش میشه بعد روز سومش میشه خب حالا فردا روز قیامته خونه ها رو تکون نه بی خیال سوار رو درست کردیم؟ نه بی خیال باورهای ما هم قلط خدا وکیلی جونید رفت پیش به مقتضای آخر سال همینه دیدیم بحث همی طوره بی خوده. باید صحبت بکنیم تا حرف بعدی که سنگین بگیم گفت قضا ولدی بخوری؟ گواره باشی جانبی بخوری؟ گفت دست ها میشونم بسم الله الرحمن الرحیم میگم نمک بخورم تا سیر نشدم میخورم بخورم تا سیر نشدم دست میکشم شکر بکنم بعد بقیهشو انفاق مانم. با خوردنم که بلد نیستیم. گفت خابیدم ولدی واره؟ او چی جوری بخوابی؟ قبله بخوابم. ستا سوره توحید بخونم. تسبیحات میگم چه میکنم؟ اشهد میگم بگم. وسیعت سرم بزنم. و خوابیدنم که بلد نیستی عجب پس ما خوردن ملدیم نخوابیدن و ما چی هستیم گو خو حالا بگو بیدم که چهجوری باید بخوریم گو حلال حلال باید بخوری گو چجوری باید بخوابیم گو با وجدان راحت حالا بدن دنده چپ بخوابی یا راست بخوابی با وجدان راحت یعنی ظلم به کسی نکرده باشی بدهکار به کسی نبوده باش با به چپ بخواب بخواب آقا زندگی هم که ولدیستین این خوردن و خوابیدنش این هم که ولدیستین اگر به ما میگم فردا قیامته چی کار میکنی خونه تکنی واقعی اونه حساب رسیه اونه خب این سه خصوصیت الله با این ستا واجبه به است معلول نیست علت نخستینه هلو معلول نیست ممکن علت باشه ولی علت وسط باشه علت وسط باشه برای مقبلیا میشه چی معلوم نه علت نقص تیم چارونی ویژگی که داره این است که حضرت حق حقیقتی است مستقل یعنی آنچنان موجودی است که هیچ نحو نیازی از هیچ جهتی به هیچ شیعی ندارد هیچ نحوه نیاز از هیچ جهت به هیچ شیی احتیاج نداره یعنی طول و ارتفاع و ارزش عدم احتیاجه عدم احتیاج این بینیازی است غنیی مطلقه مرتبتون مرتبتون نداره بنده و شما در تعقق نیازه نیاز به چی دارین بله علتمون اگه علتمون نباشه ما هم تعقق پیدا پس ما مرتبه با علتمون است حالا علتمون ما رو به وجود آورد در بقایمون چی علت مبقیه هم علت مبقیه یعنی علتی که واسه بقا و دوام ما بشه علت مبقیه هم چیه بله اونم احتیاج داریم پس ما مرتبتون الهیه علتمون هستیم ولی خداوند مستقله هیچ مرتبتون الهیهی ندارد چرا؟ چون علت نخستی نیست. چون معلول نیست چون واجبه به است هست این داره شد چارومیش که مستقل درست جو؟ حالا بریم سناخ پنجمه یه خود سخته تا اینجاش که چیزی نبود که بله؟ یعنی بود تبدیل شد به این که آسان شد انصافش اینه دیگه مطلب سنگی بود توضیح دادیم آسان شد خب حال پنجامیش کمال مطلقه وقتی میگه الله یعنی همه چی باید داشته باشه همه کمالاتو دار مقصود از کامل مطلق است که کاملتره از آن امکان پذیر نیست. برای اینکه موجودی کامل مطلق باشد، باید دارای دو خصوصیت باشه. یعنی وقتی میگه خدا کامل مطلقه، یعنی از او کامل در وجود یک یعنی اینکه هیچ نقصی به وجودش راه نداره. حالا اگه بخواد کامل مطلق باشه باید دو ویژیگی در نظر گرفته بشه. ویژگی اول. هر وصف کمالی را واجد باشد. یعنی دارا باشد. دارای تمام کمالات. چه شما تصور بکنید؟ چه شما تصور نکنید؟ ما یه سری از نعمتهای الهی را اصلا نمی فهمیم ما یه سری از خوبی ها اصلا نمی ولی یه سری خوبی ها رو میفهمیم همین خوبی ها رو به خدا نسبت بدین بله این میشه امیر و از اون خدایی که تو میفهمی بهتره بالتره چرا؟ چون تو میگی اون خوبیهایی رو که من میفهمم به خدا دارم نسبت میدم در حالی که خدا چیه؟ واجد تمام صفات کمالیه چطور تو بفهم این میشه خدا این خداست واجد همه کمالات. چون من بفهمم چون من نفهمم ما خیلی هاشم نمی فهمیم ما انصافرم نمی فهمیم این که گفتم بحث نعمت رو مطرح کردم یا اون نشستید خانومان نشستین خیلی راحت هم نشستید یه خود آنزیماتون جا به جا بشیدید توت بشیدید تا برای نشستن نداری این نعمته تو حالا اصلا عجوش فکر کردی یه همه اولا قلبم سالمه همه اولا فقط فهمیدی فقط همون رو فهمیدیم. همین که ما بتویدیم درست را بریم. روی مسیر مستقی میتون را بریم. این نعمت الهی است. بپرسید از کسانی که متخصص فن هستن الکترولیت انسان اگر جا به جا این تعادل هم بمیره. نمیتونی بیشید. نمیتونی را بری. خدا چیکار کار کرده با بشه. میخوان بگم ما بعضی از نعمتها رو اصلا نمی ولی اگه میخوان کمالی رو به خدا نسبت بده نه اون کمالاتی رو که ما میشناسیم، خداوند واجد چیه؟ همه یک کمالاته شون بخشید که ما میشناسیم به دست رسیده هزار و یک اسم خدا به دست ما رسیده یعنی هزار و یک کمال الهی به دست ما رسیده ولی موجوده بی نهایت دارای هزار و یک اسم نیست تو با سد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را تو اگه میخواستی اونجوری که شایست خودت تجلی پیدا بکنی که من محدود که نمیتونستم که من از همین نیم نگاه من هم از همین روزنم نمیتونستم آدم وقتی عاشق میشن عاشق چی بشن؟ اگه عاشق بشن نه که تو خیابون اتفاق بشن نه عشق نیزه بیشتر عوض نیست. اگه عاشق بشن اما تو خیابون نیزه هم نه به شکل دیگرش هم که بخواد اتفاق میفته. آدم این زاد اگه بخواد عاشق بشه باید یک کمالی رو درک بکنه اگه بخواد عاشق خدا بشی باید کمال و خدا رو درک بکنی درست و هر هرچی کمالات رو بیشتر در بکنی بیشتر آشقش بیشی برای بر این بین همه وجودات خدا از خودش آشق نسبت به خودش سراغ نداره خودش خیلی آشق خودشه اول عاشق و معشق خودش و بعد وجود و نازم نسته ختمی مرتبته چرا؟ چون خدا خودش میدونه چقدر کمالات داره ما چی نمیدونیم چقدر کمالات داره ما میدونیم چقدر کمالات داره نیم ما همین هایی هم که دستمون رسیده اصلا درکش نمی کنیم. بیشتر از یک نوشته سیاهی روی سفیدی بیشتر نیست ما بیشتر از این با اسما الله صفا نکردیم از هجمی یک ورق بیشتر نگذشته از قطر یک ورق بیشتر نگذشته خیلی بده خاطر همین رو ما این وقت نبتونی به دعا کنیم آشق خداییم چون اگه ایسی به خود آشق بشه باید چگاه بکنه؟ صفات، کمالات رو درک کنه پس اگر خواستی خدا رو بگی ها من یا الله و یا الله خدایی که نمیشه تصور کرد که خدایی متصوره خدایی محدوده پس خدا رو باید حداقل بدونیم که خدا من اعتقادم اینه که تو همه صفات رو داری نه همه صفاتی که من میشناسم هر وصف کمالی را واجد باشد یعنی واجد کل کمالات است یک دو نه خودش و نه اوصافش مشروط به هیچ شرطی نباشد خدا عالم است اما علمش وابسته به چیزی نیست ای معلم بیا خدا قادر است قدرتش وابسته به چیزی نیست خدا حی از حیاتش وابسته به چیزی نیست اگر بخواهید یک موجودی را به کمال مطلق وصف کنید باید ای دو ویژگی درش باشه اولا واجد همه کمالات باشد نه همه اون که شما میشناسید این یک دو هم خودش هم کمالاتش یعنی اوصافش وابسته به چیزی نباشند این همون بحث است که ما در تویید صفاتی گفتیم صفات حضرت حق این ذات حضرت حقه مثال هم زدیم که مثلا صفت روغن چیه؟ چرپ بودنه درسته که وصفش چرپ بودنه اما حقیقتش هم جز چرپ بودن چیز دیگری وصف و صفت یکیه اما وقتی به شما وصف و ذات یکیه اما وقتی به شما میگن غذا چربه میگی دلیلش چیه؟ روغنش زیاده اما اینجا غذا مقوله غیر از روغنه پس اینجا صفت این وصف این ذات نیست ما در کمال مطلق حرفمون همینه که صفات حضرت حق و موصوف که خود ذاتش باشد مشروط به این شرطی نیستم. حالا مقصود از وصف کمالی وصفی است که اگر به موصوفی نسبت داده شود نشان دهنده نوعی دارایی موصوفی است. یعنی یه چیزی رو داره. واجد یک حقیقت، واجد دارد اون حقیقت رو. نشان دهنده که یه حقیقتی رو داره مانند علم قدرت حیات بینایی و شنوایی و برخلاف وصف نقصی که اتصاف موصوف با آن به معنای نوعی ناداری موصوف است وقتی شما میگید فلانی جاهل است مراد نیس که جهلو داره مراد که علم نداره علم نداشتن میشه چی آقا نقص اگر جهل داشته باشه خود جهل اگر حقیقتی باشه خود اون بازی کماله ولی وقتی شما میگید طرف جاهل است به این معنا نیست که جهل را دارد بلکه به چه معنایی است علم را ندارد این میشه نقص وقتی شما میگید خدا قادر است یعنی که آجز نیست درست پس دارای یک حقیقتی به نام قدرت حالا اون حقیقت چی خواهیم گفت؟ اما وقتی میگی فلانی آجز است به معنای چیه؟ یعنی که اون صفت کمالی قدرت رو نداره پس صفات وصف نقصی که اتصاف موصوف با هم به معنای نوعی ناداری موصوف است مثل جهل، عجز، موت، کوری، کری و به عبارت دیگر نسبت دادن وصف کمالی به موصوفی که فاقد آن بوده است برابر است با افزایش چیزی وقتی شما عالم نبودید بعد میرید درس میخونید علم پیدا میکنید حقیقتتون چی پیدا میکنه چی افزایش پیدا میکنه حقیقتتونم اساس بدون کنه اینو یاد بگیرین در قرانم میگه لئن شکرتم چی شماها رو زیاد میکنم این حقیقت منو مال تو زیاد میکنم شما اگه شاکر باشید لئن شکرتم من خودت تو توسعه وجودی میدم خیلی تو خوش کردی یعنی داره کمال میشی من که فکر کنی پولت بیشتر میشه خاطر همینه حالا گفرده که دعا نمیده وقتی قضا میخوری دیگه شب نمیده خب پول هم زیاده میشه که زیاده سعه وجودی پیدا میکنه سعه وجودی پیدا میکنه میتونه بشه زل الله سایه خدا این سعه وجود میگه که زلاللهه حالا اون قاجاری هره بریشون کن خودش خودشون میگفتن ولی موجودی که میشی سایه خدا چی پیدا میکنه کنه سعه وجودی پیدا کمالات رو در خودش اضافه کرده کمالات هی اونو وسعتش بیدن منشو واقع قضا که میخوری چاق میشی ما این وسعت پیدا میکنه ولی کمالات خیلی نحرف های دقیقی خدا کنه که دقیقتشو بفهمید من چی درم من خودم در حال کیف هم. چون انسان وجود است و اوصافش هم از سنخ وجودن لذا وقتی انسان متصفه به اوصاف وجودی میشه سعه وجودی پیدا میکنه کمال پیدا میکنه. بزرگتر میشه نه اینکه که تر میشه سعه وجودی پیدا میکنه عالم زاهد عابد نامه همه اوصاف است. اگه وجودش وجود حقیقی باشه آخواه بعضی که کلک بیزنن که بعضی تو مترو آلم هم بیرون چی ندار آن نه بعضی جلوی جلای خیش و قم هم نه ولی اگر عبادت عبادت به محنای حقیقی باشه سعه وجودی آدم بیشتر میشه گسترش وجودی پیدا میکنه گستردگی وجودی پیدا میکنه ظرافتی داره حالا توضیح میدم میشه پس نسبت دادن وصفی کمالی به موصوف یعنی به یک ذات به یک حقیقت فاقد آن بوده برابر است با افزایش چیزی بر موصوف یا گسترش وجود موصوف شما وقتی علم پیدا می نه قتلت بلندتر میشه نه وزدت بیشتر میشه ولی حقیقت چی میشه گسترده تر میشه چرا چون کمالات از سنخ وجود هستن کامل مطلق بی استثنا هر وصف کمالی را واجد است و به زبان منطقی هیچ وصف کمالی را از آن نمیتوان سلب کرد اوصاف کمالی همه را داره هیچ را هم ازش سلب نمیشه گرد. چرا که مثلا موجود الف را کامل مطلق اگر فرض کنیم میگیم آقا مثلا موجود الف کامل مطلقه و معلوست فاقد مثلا صفت بس صفت کمالی برو نداره موجود الف کامل مطلقه و ما هم ادعا میکنیم که کامل مطلق یعنی همه صفات کمالی را دارد یک و هیچ صفت کمالی رو از سلب هیچ صفت کمالی رو ازش سلب نمی‌کنید. خب حالا مثال بزنید. چطور نمیشه سلب کنین؟ بخواب توضیح منطقی بدیم. توضیح منطقیش اینه که چرا میگیم موجود الف برانگی نمیخوام چیزی تو ذهنتون بیاد، بierzam و علف ما میگیم موجود علف کامل مطلق است. خب؟ کامل مطلق یعنی که همه کمالات رو داره، هیچ کمالی هم ازش سلب نمیشه. ما میگیم موجود علف کامل مطلق است ولی کمال ب نداره این خصوصیت کمالی رو نداره کمال ب هر چی هست کمال ب یعنی چی؟ به کنایه از هر کمالی دیگه مثلا کمال برو رو نداره آه؟ کمال ب رو نداره معلوست فاقد وصف کمالی مانند بست در این صورت میتوان موجود جیم رو تصور کرد که همه اوصاف علف رو داشته باشه خود برو هم پس میشه کامل داره از اون دیگه راستش پس بیش فرزش کرد پس شما نمیتونید بگید علف کامل مطلق است در حالی که صفت کمالی برو نداره چرا؟ چون ما جیم رو تصور میکنیم که همه کمالات علف رو دارد اون نقیصه برو هم جبران میکنه داره شما کامل داره از اون بنابراین شما از موجود کامل مطلق هیچ صفت کمالی رو چکار؟ سلب؟ نمیتونه بکنید. حرف منطقیش اینه. وقتی میگید کامل مطلق است یعنی همه رو داره؟ یک. ازش هم چیزی سلب؟ دو. و از فاقد وصف کمالی ماننده بی باشد. در این صورت میتوان موجودی مانند جیم را فرض کرد که هم واجد همه کمالات خصوصیت علف باشد و هم وصف در واقع برو چی باشه دارا باشه. آشکار هست که جیم از علف کامل در خواهد شد. اگر بتونید از علف صفت کمالی را چی بکنید؟ سر بکنید. دارا که شما میگید کمال مطلقه. با که فرض شده بود که علف کامل مطلق است این برهان خلفه من برهان خلف ساده براتون گفتم اگر نپذیرید کامل مطلق... اگر بگید کامل مطلق است پس باید واجده همه استفاد باشه خب میگید بیرو نداره پس کامل مطلق نیست دیگه پس کامل مطلق نیست این خصوصیت اول خصوصیت دوم این است که در صفاتش مشروط به شرطی نباشد خصوصیت دوم کامل مطلق مشروط به هیچ شرطی نیست نه خودش مشروط به شرطی است یعنی نیاز به علت نداره و نه برای اینکه واجد اوصافی باشد نیازمنده به شرطی است او به همه دانستنیها ها علم دارد و علمش به هیچیک از ها مشروط هی... و علمش به هیچ گزانه ها به هیچ شرطی نیست بزور به ها علم ما به, به ها مشروط به شرطه علم ما به جنیان مشروط به شرطه علم ما به دریاها مشروط به, به هیچ شرطی نیست همین علیه و همین علی کمال مطلقه هیچ شرطی نداره چون مطلق این است که به هیچ موجودی احتیاج و مشروط یعنی که شما به چیزی احتیاج حداقلش که با شرطت باشه دیگه حداقلش که با شرطت باشه به عبارت دیگر علم او به کل علم غیر مشروط و مطلق است پس کامل مطلق نه تنها باید عالم کل باشد بلکه باید عالم مطلق هم باشد یعنی به هیچ چیزی هم وابسته نباشد این شد چند تا ویژگی؟ پنشتا ویژگی ششم حضرت حق اینه که خداوند حقیقتی بی نهایت خداوند حقیقتی است بی‌نهایت اینو بخوام توضیح بدین یه خدا وسطش ما به سعه وجودی صحبت کردیم فکر می‌کنم که بس سنگین شد برای که دیگه چیز نشه این پنج تا رو تا به حال راجع خدا محققا بدانید این بی نهایته یعنی خداوند محدود نیست صفاتش این زادشه. صفاتش این یعنی صفاتش هم محدود نیست اگه شما صفات خدا رو محدود کردید او خدایی که میپرستید خدای حقیقی نیست حالا شما خدا رو محدود میکنید یا نمیکنید؟ خیلی جا خدا رو محدود کنین اونجایی که جوابتون در دادن حاجت نمیده حاجت بیکن خدا مریضون شفا بده نمیده عجب خدایی هست یعنی قدرتشو بردی زیر سال یعنی قدرتشو بردی زیر سال اونجا که حسادت میکنی یعنی حکمتشو بردی چی؟ زیر سال چرا خود شما که حسادت میکنی؟ چرا به او دادی به من ندید دیگه؟ یعنی تو حکمتت در واقع محدوده محدوده دیگه بعد تو خدای محدود رو میسن همینه که توی عدل خدا مشکل دارن یعنی خدا رو چی میدونن؟ اه خدا ظالمه؟ منو مریضه؟ از, از ازل خرخ کرده خدا ظالمه یعنی خدا رو قدرت کامل نمیدونین. خدا من فقیرم از تو منو میبینی؟ یعنی خدا رو علمش کامل نمیدونی؟ ما خیلی خدا رو محدود بدونیم و این خدای محدود رو بپرستیم پس من بیران نیست بگیم که اگر کسی خدای محدود رو بپرسته چیه؟ مشرقه. از خدا خداپرستی نیست مداپرستی بینیده که شما خدای مطلق بیرسون وجود بی نهایت به همین دلیلی که مثلا اللهم ایش و این میان و به ما یاد بیدن با خدا چجوری حرف بزنی و به ما که کمش به خدا توحیم کنیم. به ما مناجات میدن به ما یاد میدن که با خدا چجوری حرف بزن پس موجود بی نهایته. خدا رو بینهایت در نظر بگیرید میتونید در نظر نه. خدا رو بی نهایت باور داشته باشین باورشون تو داشته باشین چون در نظر بگیرید بی, بی نهایت چی؟ محدود متناهی و اصافش هم میتونن چون اصافش عین ذاتش هم خدا حلم نامحدود داره قدرت نامحدود داره حکمت نامحدود داره عدل نامحدود داره چون محدودیت در خداهای نقص پس اگر ما میگیم الله یعنی یه موجود با شیش خصوصیت درست شو؟ حالا میخوان برای این الله صفات کمالی رو چیکار بکنین استدلال بکنیم بگیم خداوند واجد همه صفات کمالی هست گفتیم دو تا دلیل عمومی داریم که همه صفات کمالی به واسطه این دو تا دلیل اثبات میشه پس تا کجا پیش بردین؟ بیان ادله عمومی اثبات کننده کمال حضرت حق کمالات حضرت حق یکی دو تا و, و نیست خدا برخی از اصماعش به دست ما رسیده برخیش در علم نبیه و بعضیش هم مثلا است در علم خودشه آی این چیه که در علم خودشه؟ اینو ما نمیدونیم اینو ما نمیدونیم یدوش يکره اصمان وست که خودت میدونی صحرای خ... دلت صحرا که البته خدا منترکه خودت میدونی خودت دیگه نمیدون راج خدا چی بگی دیگه خودت میدونی خودت به بزرگی خدا رو یاد کرد رضا بگی الله اکبر این یعنی ای ششت خصوصیت یعنی الله اکبر ایشیش ده یعنی اللا اکبر تازه معنی اللا اکبر تو نماسش را در کردیم الله اکبر ای بی نهایته. الله اکبر یعنی واجد همه کمالات الله اکبر یعنی که مستقله الله اکبر یعنی که علت نخستینه الله اکبر یعنی معلول نیست الله اکبر یعنی واجد وجود به ذاته. نیستی که دستور بسزد باها خدا رو برمیداره همون خدای حقیقی ما را جو هم چه خدایی حرف بزنیم یکی از اوصاف خداوند علمه تا انشالله شاء الله برسیم راجع به علم ذات حق و رو بیان بکنیم ان